بسم الله الرحمن الرحیم کلاس استاد احمدی من درس من درس می‌گیدم ابو زيج بالله بسم الله الرحمن الرحیم الله رب العالمين صلوات اللهم على محمد الله بنده هم محضر همه آقایون سلام ارزم میکنم و امیدوارم که خسته نباشیم کلاس های پشت هم و متعددی داشتید انشاءالله که از همه این برنامه ها و کلاس که تا حالا برگزار شده استفاده برده باشیم موضوعی بنده در این فرصت دو خدمت آقایون ار کنم بحث تحلیل روشمند متون است تحلیل روشمند متون میتونم بگم که این بحث در ادامه است که هاج آقای الوائزی امروز یا بیروز خدمت شما اراد دادن که بحث روشناسی اجتحاد بوده اگر بخوام تعریفی از این موضوع یعنی تحلیل روش من بر داشته باشیم من با یک مقدمه ای شروع میکنم بحث بحث و اون اینکه در بحث تکنولوژی آموزش که در دنیا و در کشور ما مطرح و امروز خیلی پیشرفت کرده یک بحثی یا یک نظریه وجود داره به نام نظریه فراشناخت این ها میگن که خب شما به عنوان یک استاد یا یک معلم به روش های مختلف میتونید اون محتوایی که به اون مهارتی که میخوایید به دانش آموزتون شاگردتون ارائه بدید رو در قالب‌های های مختلفی می‌تونید مطرح بکنید یکی از این روش ها و قالب‌ها ها این هست که استاد یا معلم بیاد و با یکی نگاهی این صدا شخیلی خیلی, خیلی به درست استیجه‌دارید. من یه به خدمت شما که شما به جای اینکه فقط یک محتوایی رو به شاگردانتون آموزش بدید میایید و با یک نگاه از بالا، یک نگاه ماهواری، یک نگاه فراشناختی، مراحلی که در این دانش تئی شده رو به دانش آموز یا به اون طلبه تو اون مراحل رو آموزش دیدی یعنی اینکه میگید خب این استدلال علمی یا این محتوای علمی که مطرح شد در این متن درسی از چه مراحلی تشکیل شده بود و چه اتفاقاتی افتاد و در واقع بسنده چه مسیری رو طی کرد تا به نتیجه رسیم به عبارت دیگه یک نگاه درجه دویی به مراحل انجام استدلال فقهی یا هر علمی دیگه ایجار میکنید برای شاگرد برای اون علم آموز تا او متوجه شود که این عالم این نویسنده چطور و با تقیی کردن چه گامه به نتیجه رس. خب حالا فوائد این کار چیه بعدا ارزو کنیم حالا فعلا در مقامه تعریف حالا ما اگر همین مسئله رو بخوایم در بحث فقه و آموزش فقه پیاده کنیم اینطور باید ارزو کنیم که خب ما یک بحثی داریم و داشتیم شما هم دیدید این بحث رو بنامه روش شناسی اجتهاد که در اونجا بیان شد برای آقایم که فرایند استنباط یا همون به شناسی اشعار یک مراحلی داره و در اونجا سعی شد سعی در این هست که این مراحل رو تا جایی که ممکن هست ریزتر و بازتر تبیین کنن و توضیح بدن حالا مثلا در یک بیان میشه گفت که این یک سیر هفت مرحله ای داره از مسئله شناسی شروع می شود مرحله اول که در مسئله شناسی موضوع شناسی بود، محمود شناسی بود تفکیق فرور بود و بیان تفاظیل در مساله بود یعنی ما وقتی ما یک مسئله رو حل بکنیم این مراحل تقیق بود گامه بعدی استیاب ادله هست به این معنی که فقیل میرونی گرده ببینید که برای این مدعا در کجاهای فقیل میتواند دلیل پیدا کنند حالا چه ادله عقیقیه یا در تکاز سیره و حجما چه ادله نقلیه، آیات روایی، چه قواعد و موالات همه اینها رو جواب‌دهی میکنه در مرحله سوم سعی بر این می‌کنه که این ادله جواب‌دهی کرده رو بفهمه و درست نقد و بررسی بکنه که این نقد و بررسی هم هم نقد و بررسی دلالی هست، هم سندی هست و هم جهتی. و بعد از این مرحله چهارم نسبت بین ادله رو بررسی میکردیم که ببینیم آیا قرارداد بین نزدنده امو خاصی هست تخصصی تغییدی حکومتی عمومی یا نه اصلا تعارض هست اگر تعارض هست چه چگونه باید بین دو دلیل جمع بکنیم یا اینکه با به تعارض رو پیاده بکنیم مرحله پنجم جنبندگی بین نزدنده بود که ما بعد از اینکه تک تک ادله رو دیدیم و نسبت بین این ادله رو هم بررسی کردیم باید این جنبندی از مجموعه ادله ارائه بدیم که کوی که از دل معبرم ک معتبر نیستند و بعد از نسبت سنجیر بین ادله چه چیزی باقی می چه بخشی از مدعا قابل استدلال هست برای کوول بخشی از مدعا ما دلیل داریم برای کو بخشش دلیل نداریم؟ و در مرحله ششم که میشه گفت حقیلی من دوی آخرای استنباته یک مرحله مستقلی هست ما قضاوت و درائه نظر داریم که اینجا یک مرحله مستقلیه در اینجا در واقع حقیل بعد از اینکه جمع بنداشم انجام داد یک نگاه دوباره درده میدازه و حکم مسئله رو حدس میزنه اینجاست که گفته میشه فقاحت یک حدسه یک خوبه حدس یه yes. است که اینجا باید تقییب بتواند نزدیکترین حضر رو با توجه بعد درده ای که جنبه می کرده مثلا به واقع بگیریم یعنی باید بتونه تا جایی که ممکنه هست اون واقعه حکم واقعی رو بتونه کشف بکنه و اراعی نظر بده یه مرحله بعدش مطرح میشه که اون بررسی نتائج و آثار حکمش که استمگاه شد این هم مرهنه مراهده استنباد حکم شرعیه که با جزئیاتش میشه پرایند استنباد یا همون روش شناسی اجتحاد خب ما چی کارم بخارم بکنیم در تحلیق روشمنده ما اگر بیان و در یک مصد فقهی که حالا موضوع برسنون هست در واقع هر یک از گزاره های مصد فقهی رو شناسایی کنیم و در اون جدول فرایند استنباط جایگزاری کنیم و محلوم کنیم که این بخش، این پارگراف، این بند از متن فقهی گویای کلوم یک از مراحل فرایند استنباد هست اولاً و در این متن فقهی بتوانیم طوانی روش های یا به تعبیر نکات روشی استنباطی رو هم استخراج بکنیم علاوه بر اینکه تشریف میدیم که این بیانگر چه مرحله ای از مراحل استنباده است علاوه بر این نکات روشی که در این متن وجود داره رو هم استخراج بکنیم این میشه تحلیل روشمند موضوع چه پایه‌ای داره این کار چه ضرورتی داره این کار خب سوالاتی خیلی اوقات در ذهن طلبه ها و به تبعش ممکن اساتی در ضمن خوندن دروسه و ذبد خصوص وقتی باره در سطح و مقاصد و رسائل و اینا ها میشن پیش میاد مثلا اینکه خب ما برای چی باید خط به خط متن مقاصد رو بخونیم مگر کتاب مقاصد تنها کتاب فقهی در مثلا شیعه هست به در حوزه هست این هم کتاب فقیقی ما چرا مقاسب میخونیم از کتاب مقاسب چه چیزی رو هم به دست بیاریم چرا وقتی که ما یک مدتی مقاسب خوندیم حالا ممکن اونهایی که لومه خوندن بگم مدتی که لومه خوندیم چرا ما نمیتونیم همون کاری که شیخ انصاری انجام داده رو ما هم انجام بدیم یعنی یک مسئله جدیدی رو که در برابر ما قرار میدن ما هم بتونیم نسل شخمسالی سفاظ رو کنیم چرا رو نتیجه بگیم؟ چرا نمیدونیم؟ آیا فقط مشکل فاصله علمی ما و شخمسالیه؟ یا نه؟ نکته بعد اینکه خب سوال دیگه که در سهن طلاقه هست اینکه ما چرا بعد این همه چندین سال سلطه طولانی این کتاب ها رو خط به خط و صفحه به صفحه بخونیم هر روز میکنیم استاد چند صفحه چند خطی که ما درس میده از رو بایدام تطفیق میکنم میریم برای روز بعد. دوباره روز بعدم روز از اما روزی از اما استاد میان و چند خط دیگه از رو میخونه توضیح میده تطفیق میکن. دوباله چی هستیم آیا نمیشه یک کاری کرد که سرعت آموزش بالاتر بره ما یک موقعی محضر مطلعای مفیدی رسته بودیم حفاظ حالده ایشون از قول محضور مطلعای بهجت نمیم کردن گفتم که من شمیدم طلبه ها دو سال مکاسب میخونم فکر میکنم تدبیرشون یک بود حالایشون تصور شده که دو سال طلبه ها مکاسب چه نیازی هست خب وقتی که چند تا فرق فقیه رو طلبه ها از ریکیت های مکاسب خوندن بعدی خودشون کار شرو یه آقای نگاه آقای وحجت رو خب این کی میشه این اتفاق بیافته چرا من باید ما داشتیم موقعی خود مقاصد میخوندیم بعضی طلبه ها بودن که تا روز آخره آخرین جبت مقاصد دنبال این بودن که خب آقای استاد این جمله معنیش چیه این زمین به کجا میخوره خب الان شیخ انسالی چی کفت همینطور خط بخار اگر چند جبت دیده یا مقاصد داشت هم خب ما هستیم؟ ما میخوایم چه استفاده از مقاصد بکنیم؟ ما یا ما میخوایم یک حافظ مقاصد بشیم؟ استاد مقاصد بشیم؟ یا نه؟ ما میخوایم فقیل بشیم؟ ما اگر به دنباله این هستیم که در آینده میخوایم یک مسائل جدید فقی رو حل بکنیم یعنی من بنشینم در جایگاه شیخ همساری در جایگاه آقای خود، در جایگاه مردمه ما مسئله حل بکنم، این اون علاقه اینکه با صرف خوندن متن حاصل نمیشه به سختی حاصل میشه اون نکته ای که باعث میشه من در خلال درس گرفتن و خواندن این کتاب فقهی مثل کتاب مکاسب که کتاب خوبیم هست بتوانم مهارت استنباط رو یاد بگیرم به خودم به یک نقطهی برسم که در حد اقنیت و اطلاعات خودم استنباط داشته باشم همین نقطه هست که شما وقتی که متن فقیه را درس میگیرید در کنار و علاقه بر درس گرفتن متن باسق به این متن را به لحاظ روشی تحلیل بکنید حالا من بعداً نمونه ای از فهمید درشمند رو هم عرض می کنم تا منظورم واضح‌تر بشه اگر اگر استاد موقعی که درس میده این کار رو بکنه و طلبه هم موقعی که درس میگیره موقعی که مباحثه میکنه یا مطالعه میکنه ناظر به این مدل کار درس بخونه ناخود توانایی و قفه استنباط فقهی خیلی سریعتر رشد میکنه بخوام مثال بزنم براتون مثلا یک شاگرد مکانیکی می بوده که راfte مکانیکی یاد بگیره خب یه حقی هستی استاد عصبانی بی هست که حوصله نداره هفت بزنه با شاگردش و این شاگرد فقط مجبور کارهای استاد نگاه بکنه در طول مدت مثلا چند سالی چیزی یاد بگیره بستگی به هوش و استعدادش بستگی به این که چقدر وقت بذاره و مکانیکی یاد مکانیکیان درست ولی حقی هست که نه استاد استاد مکانیک وقتی یک بخشی از موتور رو یا رو مثلا باز میکنه بعد که باز کرد برای شایگرش توزیدی که بیا کن اینجور پیچه رو اینطوری باز میکنه این قسمت رو یا چیزای شبیه رو اگر بخوای باز بکنی مثلا اگر از این روشت استفاده کنی بهتره من مثلا خودم اینطوری که کار میکنم راحتر کار انجام میدم. دونه دونه قیلکه ها بر روش های کاریش رو برای شاگردش توضیح بده و بعدم شاگرد بیاد اینها رو در یک جای تمرین بکنه ممکنی خیلی زودتر در مدت چند ماه این شاگرد برای خودش دوستایی میشه و مکانیکی یاد میگیره چه افتقارا میفته اینجا؟ اینجا این استاد مکانیک که حواسش به تربیت شاگردش هست داره نکات مهارتی و نکات روشی کار خودش رو الان برای این خود کار یاد میده نکات روشی کارش رو هم یاد میده دقیقا مسئله سر همین هست بگو که دیگر رو بگن خیلی ما شمیدیم که میگن مثلا ما فقه های قنبی داریم فقه های نظفی داریم مکتب ما مکتب نظف خب چه طرح است این مکتب و گم و یا مثلا میگم که روش استنباط شیخ با مثلا روش آقای خویی متخابه چه تفاوتی از بینشون؟ ما چطور میتونیم بفهمیم که چه تفاوتی بین روش استنباط فوق است چطور میتونیم بفهمیم که کنون دقیق بهتر و دقیقتر استنباط انجام داده؟ از کجا میتونید بفهمیم حالا شاید برای از از این مواردش گفتن یا مثلا حاج آقای متقیمان فردا بناست که روش یا امتیازات روش استنباط مقام ازم رهنداری باید شما توضیح بدن. خب چطور ما میتونیم با این امتیازات روش ها استنباطاشنا بشیم راهش همین یعنی اگر برای من عنوان یک پدبه این اه... تحلیل روشتند متون فقهی ملکه شده باشه و این مهارت رو یاد گرفته باشم وقتی با یک محص فقهی مواجه میشم غیر از اینکه خود محص رو میخونم و میفهمم استدلال ها رو میخونم و میفهمم و اشکالاتی ممکنه به ذهنم بیاد علاقه بر این با یک نگاه به صلاح یا از بالا میام و این رو می کنم که این فقیر چه مراهلی از فرایند استنباد رو تیه کرد؟ چه مراحل رو تیه نکرد؟ آقای شیخ همساری وقتی که میخواد یک مسئله رو بررسی بکنه خب این مرحله نقل اقوال و عرضم به خدمت شما رو معمولا خیلی مفصل و خوب انجام میده درسته؟ ولی بررسی سندی معمولا نمیکنه یا خیلی مختصر یا مثلا وقتی که آقا آقای شیخنزالی یک مفهوم غرفی رو برای ما توضیح بده خیلی گوی یا حوصله مراجعه به کتاب مختلف لغبی رو نداره یک تا کتاب لغبی رو مصرح میکنه و میره سراغ یک کارای دیگه ولی مثلا یک فقیه دیگری رو نگاه میکنه مرموم امام نه مفصل چند تا کتاب لغبی رو دور دونه میاره مطرح میکنه تحلیل میکنه باز میکنه. یا موارد مختلطه دیگه همین تفاوت در طی مراحلی که به این ها وجود داره همین هست که تفاوت ها رو روشن میکنه که یکی میشه فقیه قمی یکی میشه فقیه نجفی اون که فقیه نجفیه طبیعتا کسی که بیشتر بر اساس اصول موضوعه و قواعد اصولی میره جلو و هر نتیجه که قواهد به بر اساس همون منتظم میشه و فتوا میده یک کسی مثل چیز همتزادی شما می‌بینید در کتاب مقازه که کاملا هدهده رو خیلی نوشه کامل همون بررسی میکنه ولی در اون مرحله ششم که مفتیم میخواد قضاقات کنه و رعی بده می‌بینید که همون ای که رد کرده بود و قبول رو دوباره میاره و از همون عدده هم استفاده می‌کنه. چرا چون آقای شیخ انصاری تشخیص داره میان تشخیص هست آقای شیخ انصاری قائل به این هست که باید وقتی که میخواد فقهی نظر بده هر آن چیزی که در درصدی و درجه ای از احتمال صلح برای اون درست میکنه رو مد نظر قرار بده اینم بالاخره 5 درصدی مورد عمل کردیم این ولی اینم بالاخره هر درصد ده درصد احتمال مطابقت با واقع داره دیگه اینم استفاده میکنه اون دلیگه دیگر همه ادله در کنار هم استفاده می تا به یک تطویه های و اینا میشه اختلاف متدها، اختلاف رعش های بین فوقه ها و بعد شما با این نگاه میتونید تشخیص بدید که چه فقیه اعلم از فقیه دیگر هست صرف اینکه که یک فقیه مجدلات زیادی از کتب فقیه رو نمشه کافی نیست شما یک بحث فقیه از این فقیه رو با همون بحث از فقیه ببینید که من خیلی دقیق تر خیلی موشکاپانه تر خیلی کامل تر فرآیند فرایان درسته بایدو کرده بود این طبیق طبیعاً باید احلام باشیم من دفتی آخری که میخوام ارسو کنم به عنوان ضرورت این روش تحسین یعنی تحلیل روشمند موتون این است که خب من و شما با من یک طلبه انقلابی میخوایم این مهارت و قفت استنبادی که به دست آوردیم رو در مسیر حل کردن مسائل روز جامعه کار ببریم ما میخوایم مسائل انقلاب رو حل کنیم ما میخوایم مسائل اقتصادی نظام رو مسائل فرهنگی نظام رو مسائل سیاسی نظام رو مسائل تقنینی نظام رو حل کنیم ما میخوایم ارسه که تا حالا در فکر کار نشده رو باز بکنیم درسته؟ خب، چگونه می توان همان قوت و مهارت و توان فقیه شیخ انصاری را در یک عرصه جدیدی مثل عرصه اقتصاد مثلا بوس. چگونه می توان اون قوت و مهارت رو در اینجا به گرفت و از همون مهارت و از همون قوت اینجا استفاده کرد برای اینکه که یک نظریه صحیح و کامل و دقیقی از طرف حوزه از طرف اسلام برای این موضوع بدیم چگونه میتونید این کارو بکنید واسه یکی از اصول مهم همینه که اگر شما توانستید این فقی که بخواش مدتی کار کردید مثل مثلا آقای خوبی مثلا مثلا اگر تونستید متن فقهی رو کاملا تحلیل روشمند بکنید از هایی که از این تحلیل به دست آوردید میتونید استفاده بکنید برای اه... کار جدیدی هی شروع بکنید الان در یک عرصی جدیدید مثلا عرصی فقه تربیت یک موضوعی مدرح شده که شما میخواد این موضوع رو از نظر دیگه بردرسی کنید خب من چیزی الان در دستم نیست اگر فقه سنتی بود مثلا میدید که 10 تا 15 تا 50 تا کتاب در مورد این موضوع هم زدن خیلی از اقاقای ما این ای خیلی از آقا وقتی خب اون موضوعی که دیگران در موردش حرف زدنونو میذارن مثلا حرفهای دیگران هم نگاه دیگران میکنیم مثلا آقای خویت به صدالی آورده آقای تبریزی صدالی آورده آقای فاضلی صدالی آورده آقای محموده ما یه دونه دونه رو کنار هم میچینیم و یه تنبنده میکنیم و به نظری میریزیم ما یه نظری بینیم ولی اگر یک مسئله بود که تا حالا کار نشوده هیچ فکری نظری نظر از دست دلیلی توش نشوده من چطور میتونم در مسئله را حل کنم؟ اینجا سخت میشه کار اینجاست که قوت یک خویل روشن میشه من اگر این متن‌های های فقیه که چه در دوری سبت چه در دوری خارج ها خوندم دارم اگر با این روش کار کرده باشم یک بانک اطلاعاتی از روش های سباز دارم پیش خودم ممکنه اینا رو کم کم جمع بکنم ست تا دیمیس تا 500 تا رویش استنبادی بشه اینا رو دارم و با اینا تمرین کردم و کار کردم حالا که میخوام این مسئله رو هم بکنم از این در استفاده استخده بکنم مسئله. مسئله شناسی بکنم همین مرحالی گردگردم استیابردگه بکنم و تا خب برای اینکه ما بتوانیم چون پرسد خیلی کم هست بنده فقط در حد تر ایده یک توضیح خدمت آقایون بدم که اگر انشالله توضیحان روشن و قانع کننده بود یا آقا بگیری کنند گیری این روشتگاه رو برای که بتونیم این تحلیل روشمند مطمون رو انجام بدیم باید ابتدااً ما اون فراینده استنباط رو بهش مسلط باشیم و تا توضیح دادن من یه اشاره کردم اون هم مرحله رو که این فرنده استداد خود این یک علم جدیدی بیاوا یعنی روششناسی شناسی یک علم جدیدی در کنار حوزه اصول هست با علم اصول هم متفاوته اگه شاید فرقشو با علم اصولم براتون گفته باشه اینو بعد من از نظر تحول برش مسلط باشم هایم در زنی نگشته شده تصادف غلط زدم و کم کم این داره توسعه پیدا می‌کنه هم در حوزه داره توسعه پیدا می کنه هم نمیسنده در موردش کتاب می این گام اول هست گام دوبوم این هست که من باید این متن فکری رو که میخوام به صورت روشتن تحلیل بکنم دقیق مطالعه کنم یعنی کسی میتراند از این مودل کار استفاده کنه که به دهاز علمی بتراند یک متن فکری رو دقیق و خوب مطالعه کنه و بفهمه اینا دیگه مقدمه این مرحله است بعد مرحله بندی که ما دو نگاه داریم حالا اسمشون می‌تونیم بگذاریم یکی نگاه ماهواری یکی نگاه تراشناخت نگاه ماهواری یعنی اینکه شما این متن درسی رو که خوندید مثلا یک فصل از یک متن درسی یک کتاب مقاصد رو مثلا 10 صفحه 15 صفحه خوندید با نگاه ماهواری میاد از اول شروع می‌کنید بررسی کردن که هر بندی هر کارگرافی، هر بخشی حتی ممکنه هر کلمه ای از عبارات این مصنفقی بیانگر کدو می از اون مراحل خرایندست می الان اینجا حالا نمونه این اینجا الان فقیه داره موضوع شناسی میکنه. اینجا داره دلیلیابی میکنه. اینجا داره دلیل رو به دنواز قراهل داخلیه بدرست بداره به نحاظ قرآن خارجیه بعد رسیم واقع باقا به بتوانیم مراحل کاری که فرقی هنجام بیدهد را بفهمید در بین حواشی کتاب محقاست کتاب حدت طالب که داوت مناهزه کردید بعضی این کار را کرده یعنی شون مرهوم رفعه بعضی در بعضی از بسیاری از موارد قبل از اینکه توضیح بدن حبارت شیخ خمساری رو اینو توضیح میدن که همه شیخ خمساری چیکار کار مخواد بکنه این همون چیز تقریبا همون چیزی که ما با نگاه ماهوارهی میخواهنم و اون مرحله آخر انابه بر این نگاه ماهوارهی که شما میفهمید که هر مطلبی از مطالب شیخ خمساری گویاهی رو یک از مراحل مراهل فراینت هست علاوه بر این روش های تقیی کردن این مراحل رو هم میفهمیم یعنی باید کشف بکنید که شیخ انصاری برای استدلال کردن برای حل کردن این بخش از محتوا از چه روشی استفاده کرد حالا همین یه نمونه همینجا بگم تو مثلا نیقولید آقای شیخ انصاری برای شما مثلا اگر یه روایتی بهتون بدن که بگم ظاهری روایت رو بگید چیه؟ چکار چی میکنید؟ البته میره کتاب کلماتشو اول جدا میکنید فخر روایت میریم در کتاب لغوی مثلا ببینیم چه معنایی دیدن بعد بر ترکیباتشو بررسی میکنید به این جنبندگی رسیدم اینو. آقای شیخ اصلا چیکار میکنه؟ آقای شیخ اصلا از موارد میگه که این روایت اگر بخواهد این محنا رو داشته باشد خب دقت کنید. اگر بخواد این روایت این محنا رو داشته باشه پس چطور در فلان فرد دیگر دقی اونطوری میشه بس مثلا میخواد به علامه های هدی اشکال یا مثلا بیشتر به سوخوا به جو اشکال کنید. آاف اگر شما میگید معنای روایت اینه، پس چرا توان فردبردی اون طوری دعاق دادی؟ اون نظر دادی؟ یعنی در واقع با بررسی لوازم یک معنا و آثار یک معنا در فروع دیگر این معنا مورد نقد و بررسی قراره اینا می رویشیه خودش بالاخره دخلات نمی شود من اینجا اینطوری من رویش کارم تو فردبردی یک جور دیگه نظر دارم فردار یک طوری اشکال دو یا خودش اینطوری به نظر رو می رسه اینها اون نقاط رعیشی ریزی است که آقای شیخ خنصاری از این راش ولی شما کتاب امام رو بخونید مثلا کتاب فرقی مفهوم امام رو بخونید می‌بینید نه ایشون از ای ای خب. این از این راش استزحال می‌کنه آقای خوبی از راش سومی استزحال می‌کنه اینا نکات رعیش خب ا همون که خب این کار بهتر از اشا شاید بگیم ضروری است که در شروع توسط یک استاد انجام بشه کسی که به بمتنه و بعد کمیان طلبه یک نگاه روشمندی پیدا میکنه و میتواند بر اساس این نگاه روشمند چیدار کنه؟ مقدر تحلیق رو وقتی که همطوری ارز کردم شما این کار رو یه مدتی انجام دادیم اگر نکات روشی که از یک مصنفقی به دست آوردید رو جمع آوری بکنید کم کم در، با کنار هم قرار دادن این نکات روشی میتونید یک در واقع بانک اطلاعاتی از نکات روشی داشته باشید که در مقام استعمال به درد رو میبار. یعنی اینا کم کم کنار هم جمع میشن خیلی مفیدتر میشن و بعد اینکه با مقایسه نکات روشی فوقها با هم دیگه به قبط های فقیه محنات بیر و خودمون در این مقایسه طوامن بیشه یه نمونم عرض بکنم و یه خستم هستید و مزانه بتونه یک عرضی در مقاسه معرومه هست که خیلی از آقاید یادشون هست و بحث معروفی ما بحث حرمت به از علیه که آقای شنیخانس هایی بحث می آقا بی اذره نجسه حرام است خب چرا حرامه عدلش رو بررسی می‌کنم حالا من می‌خوام این متن رو کم کم با هم بریم جلو اگر که لپتاپ دارید بدید متنشو بیارید که چه بهتر که متن محاسب بریم جلو اگر نه دقت بکنید من چند مورد رو به عنوان نمونه میخوام عرض بکنم نقاط رو بشینید ایشون شروع کرد بیان مسئله تو ثانیه یه احرام و بگیگولم اذرتن نجست من کل حیمانه خب این شروع برسجون خب همینجا این جمله اول کدو از مراهله ایجا مسئله شناسیه اولا که موضوع رو داره بیان میکنه که چیه در مورد بیعه پس وقتی بیعه یعنی سایر معاملات خارجه ما در مورد معاملات دیگه صحبت نبیم بینه یه هست در مورد اذره داره بحث میکنه این رو بعدا تو ادامه بحث با یک عنوان دیگه ازش یاد میکنه اذره نجسن باید باشه یعنی مفروض گرفته شده که این اذره نجسن این ها قلیده موضوع هستن به کل حیوانه ما در مورد اذره حیوان صحبت میکنیم پس آقای شنخرساری اینجا موضوع بحثشون رو بیان کردن خب ادبا داشته این انارمین از نظر ایش روشنه به یه موضوع شناسی نگردن همین اناثار موضوع رو بیان کرد و بعد که میگن یهرومو در یهرومو خود ظاهر اولیش حرمت تکلیفی دیگه ولی بعضی از اداغانم گفتن که مراد حرمته که وضیه است، یعنی یهرومو یعنی یه خوب صدا بعضی اداغانم گفتن نه همه یعنی یهرومو هم میتواند همزمان و برانوال تکیبیه رو کنه هم وزید این هم چکل شناسی بعد کنم باید علم مشکور بلکه تذکره همه اندخلاف الاجماع و علا تحریم به یک نجس نجست ازاله شد سرژین که اینه تماماً عبارت مرموش یک خیل دوستی هست خب اینجا چه اطلاق میفتده میگه علم مشکور علم مشکور که میگه داره در واقع نظر فقه ها رو در مورد این حکمی که در اول بحث مزرکت یه رومو داره نظر فقه ها رو بیان می پس می بگیم اینجا نقل اقوال فقه هاست البته ممکنم هست بگیم اینجا این مشهود مشهور بر اجماع منقولم نقل می کنه این بیان دلیل هست که این محشیم و شرعه مقاسب اختلاف کردن. باید میگن که این عدد مشبوری که اول و به احساهای شیخ خمساری میگه در روحا به اومان دلیل اول داره زکر میکنه ولی بعد رو میگن نه چون داخل ادامه یه روایت میگی ادامه یه دبارت شیخ خمساری میگه بعد روزی که این رو میگه میگه و یدولو علای خب میگه و یدولو علای یعنی چی؟ یعنی تازه میخوام استدلال شروع کنن پس من رو میشم قبل از این استدلال علای بلکه بیان نمار حقیقتا بعض شما بگیم ویدوتو علیه عیزم اگر بگیم ویدوتو علیه عیزم یعنی اون هم دلیلون این هم دلیل, دلیل بردی ولی اینجا اینجوره بیست این که ما این عبارت در کنار سایر عبارات شیخ که میبینیم که مرمو به عبارات مرموم علامه هندی و شیخ خیلی داره اصلا اون اول بعد خالباً از علامه و شیخ نقل قول میکنه و این دهنده این هست که آیش نحنساری در روش استنباتش کاملا وابسته است در نامه قبول در بحث بحث داره او رو عنوان محور بحث فقی قبول داره نکلی بعدی که با در ادامه میفرماد که بایدو برای مضافن ادام مانتقت من امنال اخبار یعنی دلیل اولش مانتقت من امنال اینجا یک دوحتهی هست بارتا اینجا ما تفضل مند اخبار اخبار است که به عمومه ها دلالت در این فرق هم میکنه یعنی میشن عمومات این یک بخشی از عدده است آقای شیخنساری اشاره میکنه فرق اونها رو ذکر نمیکنه کلن آقای یکی از یکی از معدفه های روش بیان آقای شیخنساری ده که خیلی مفصل به روایات نمیده خیلی وقت به روایات اشاره میکنه. خیلی وقت ممکن است حتی در ذهن طلب این دردقه یا ناراحتی به وجود برکه شیخ همساری عباراتی تقییر رو خیلی دیرخوی مفسد بشیم هم دوزم رو پایین و بارا میکنه و تحریم میکنه. ولی به روایت که میرسه یا اشاره میکنه یا نمیگه نصفشو میگه نصفشو نمیگه چرا اینطوری ولی این شاید به خاطر این هست که آقای شیخ همساری در کتاب مقاسبی مبنایی داره با این که شاید اینجا اشاره کردن در کتاب با این که ایشون بحث معاملات رو کاملا بر اساس ارتکازات اغلایی میدانن و جلو بیبرن تعبودی نمیدونن یعنی در واقع بیانات احمد رو هم عمدتا ارشاد به همان چیزی میدانن که اغلا میفهمن علما عبد الله و پایه رو تحلیل‌های اوغلاوی قرار دادن شاد اما خب نه الان بعضی از فقها تو همین جا روش تقاهتشون متفاوت اینجا میان و اگر هم از اومواتی بناس که حرف بزنن اگر اون از اومواتی حرف بزنن اومات رو دونه دونه ذکر می‌کنم عبارات رو میارم و تطبیق اون اومات رو بر این استدلالی که میخوام بکنم توضیح میدم. خیلی اوقات همینجا به اشکال دیگه ولی من ایشون با اشاره رد میشم. و منم وارد استدلال به یه واقع میشم، بعد ربات رو ذکر میکنم، یک مدل جنبندی میکنم بین این دو تا روایت، اینا میشه برائت کاری که آقای خسروی نعم برام کردن. خب ما در واقع چیکار کردیم؟ حالا تقریبا یه دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. وقتمون تموم شد. ما یک چی کردیم در این نمونه خیلی عربت مجمل و ناقصی که کردیم سعی کردیم که دقیقتر بفهمیم که شیخانسهای اولا کدوم مراحل رو چگونه بیان کرده سانیا از چه روش برای حل مسئله فقهی استفاده کردیم که به نظر میرسه اگر سبک آموزشی ما روش تحصیلی ما تغییر بکنیم مقدار اسلاح بشه و به این شکل ما مقاصد بخونیم به این شکل به خصوص کتب فقیه رو بیشتر تحکید میکنیم کتابه فقیه رو به کتابه دوتونی به این روش و به این شکل بخونیم اون مهارت استنبالتی که بناست حاصل به به واسطه این دوره ای که ما داری تحصیل یا تدریس میکنیم خیلی بدر ایجاد میشه خیلی زودتر حاصل میشه دیگه نیاز نیست ما یک طلبه رو چار سال، دوان، سال، شک سال معطل میکنیم که آقا این جایی وکاسم رو نخوندیا مثلا این پنجا سفرش خیلی مهم خودی رو نخوندیا این طور نیست دیگه اگر اونی که ملاکه و مهمه اینی که من با خوندن این کتاب به دست بیارم. با این جمعش خیلی سریعیتر و خیلی دمیگتر این محارت به دست میان ولی نه اگر عزیزم به شهر سباده ناشد که روش سنتی دیگه اون مقداری که ذهن تنابیه متوجه این نکات بشه به صورت ارتکازی اون ریال که من به دهتا نکته برسم شما به 20 نکته برسی یا آقای دیگه به سیتا نکته برسه هرکی از اون مقداری که به نکات روشی دست پیدا کرده باشه و بتونه اونها رو تمرین بکنه و در جای خودش که بکنه به محارات استنبال دست پیدا بیماره و الا نه ضعیفتر موجود درجات طلاب با هم مختلف میشه خیلی خود ببخشی خیمان بنا بود که این جلس ایمان یک سبتانی باشه که من بتونم مخصد این روش رو توضیح بدم و به نتیجه محصول برس خلی خود دیگه زادن بر ما متراکمی و فرصت نبود در همین حد که من خواستم خوشه ذهن آیون این ایده و این نکته یک چراقی روشن بشه تا اینکه یه فکر بکنید که این هم یک روش برای آموزش فقه هست که در فقه نظام که شما بناس بردن نسائل و مشکلات نظام رو حل بکنید این یک روش خیلی سریع و در روی تری خواهد این صلاح هست سلام سلام حالت چطوره؟ گفتم که اینو خدمتتون کردم بردمه جای بله هست جواب روپانای یک رو به سرانت کنند یکیتون یکیتون شد دوره همینه تشکیه اینجا با در نگاه کنه، از اونجور کار زده شده به ترکیم پایی